<تصفيق> بسم الله الرحمن الرحیم و, و, و ناصر و مؤی الله محمد بن اعلی الله محمد من از یه من کنم واقعش من آدم بی نظمی نیستم که دیر بیام سر کلاس، ولی این برنامه هایی خیلی فشرده شده امروز تا ساعت چار و بیست و مثلا شیشهف دقیقه من سر کلاس فخولدیس بود آره چون به جایی که یه رو به سه بیام ساعت سه میام یعنی زودتر نمیتونم بیام از اون طرف هم که دلم نمیاد که درس رو کم بدم مثلا یه ساعت نیم ما موظف نمیده شما درس کردیم بعد دیگه تا بشینیم و یه چایی بخوریم و بعد تو همین فاصله یه دانشی اومده مشاوره کرده برای تز دکتریش که این خوبه بعد خب بنده خودم میدونی که من تو این فاصله ها تو دانش کده پیدانی میشه مقصودا میدونی که برجهت میخورده تغییر ساعت‌ها اثر داره میذاره روی این کلاس هایی باید. خب حالا بگذاریم بسم الله الرحمن الرحیم در جلسه امروز فکر میکنم اون بحث جایگاه حدیث در فقه رو ما در هفته گذشته به یه جایی رساندیم اجماع و دیگه رو امروز سعی میکنیم وارد یه بحث تازه تری میخوام در خصوص جایگاه حدیث در تفسیر برای شما سخن بگم و در خصوص جایگاه حدیث در تفسیر مطالب زیادی، یادداشت های زیادی رو جدا یادداشت کردم که شاید دو تا سه جلسه پول میکشه ولی در این حال تلاش میکنیم که این بحث رو انشالله در حتی اقل, حتی اقل دو جلسه اگر بتونیم تمامش کنیم که دیگه حالا تون به جایگاه حدیث در کلام، جایگاه حدیث در اخلاق جایگاه حدیث در ادبیات حتی اینا ما مطالبی داریم که برای شما بگیم بنابراین سعی میکنیم ما یه مقدارم فشرده تر صحبت کنیم در خصوص جایگاه حدیث در تفسیر قرآن کریم من مطلب رو از اینجا آغاز میکنم بلوان یک مباحث مقدماتی که تفسیر مادر علوم اسلامیه و ضمن که به انوان نخستین علم از علوم اسلامی تلقی میشه یعنی بعد از نزول قرآن کریم بعد از نزول خود قرآن کریم اولین علم از علوم اسلامی عبارت است از تفسیر قرآن کریم و دلایلی ما داریم که واقعا علم تفسیر رو اولین علم از علوم اسلامی میتونیم قلمداد بکنیم که حالا من بخشی از ملاحظاتش رو خواهم گفت. ذن اینکه تفسیر مادر علوم اسلامی یعنی سایر علوم اسلامی به عبارت دیگر چون قرآن کریم در موضوعات گوناگون وارد شده خود قرآن وقتی شما یک دور قرآن کریم رو مطالعه می‌فرمایید یا قرائت می‌فرمایید در ماه های رمضان و سایر ایام می‌دونید که خب قرآنی که از نظر موضوعی یک موضوع واحد نداره خب بخشی از قرآن کریم آیاتال احکام که این آیاتال احکام بعدن میشن ریشه علم فقه بخشی از آیات قرآن کریم در زمینه های اخلاقیه که این میتونه منشع علم اخلاق اسلامی باشه بخشی از آیات قرآن کریم در موضوعات اعتقادیه که این میتونه بعدها منبع و منشعی برای علم کلام باشه و حتی مثلا علمای رجالا علمای رجال میگن که در قرآن کردیم ما آیاتی داریم که به ما خوشدار میده یا توجه میده که شما از هر کسی حرفش رو قبول نکنید خب این ریشه علم رجاله در قرآن اونجای که میفرماید یا یهلز این آمنون اینجا کن فاسقون به نبین انتوسیبو قوما بجوادم یعنی این ریشه یا یکی از ریشه‌های علمییس به نام علم رجال که خود علم رجال یک علم ابزاری برای حدیث و شناخت احادیس صحیحه میخوام میگم چطور میشه که ما میگیم تفسیر قرآن مادر علوم اسلامی زمین, زمین که اولین علم ذهن خودش منشأ علوم میشه مثل علم کلام، علم فقه، علم اخلاق، حتی علم تاریخ. حالی یه بخشی از قرآنی کریم مربوط به قصص الانبیاز که در تفسیر این قصص باز میشه میگه و گونه ای از تاریخ رو برای ما تشکیل میده و میشازه. از طرفی زمن که تفسیر قرآن اولین علم از علوم اسلامی است قدیمی قدیمیترین علم اسلامی هم هست چرا قدیمیترین علم اسلامی برای که سابقه دانش تفسیر برمی به همون اصر نزول قرآن به اصر نزول قرآن یعنی پیغمبر اسلام که قرآن بر قلب مبارکشون نازل شده همین پیغمبر اسلام معمور تبیین قرآن هستند و شیعه و سنیم بر این معنا متفق القولند که اولین مفسر قرآن کریم پیامبر اسلامه حتی اگر در بین انسانها حالا چرا من میگم در بین انسانها برای که مقداری مقدارید فوق انسانی حرف بزنیم میگیم اولین مفسر قرآن خداست خدا خداوند در سوره مبارکه قیامت میفرماید فیزا قرعناه به قرانه ثم انا علینا بیانه ثم انا علینا بیانه ما یه مرحله قرآن رو با یه قرائتی به تو میدیم که از این قرائت پیروی بکن فتبع قرآن او و سب... بدان که بیان قرآنم در اختیار خود ماست یا به اهده ماست که ما امروز زمانی که قرآن رو تفسیر قرآن به قرآن میکنیم میدونید که شکلی از تفسیر تفسیر قرآن به قرآن دیگه در تفسیر قرآن به قرآن گویا خدا را مفسره بعضی از آیات میدونیم می‌گیم در تفسیر این آیه این آیه هم هست این رابطه رو ما کشف می‌کنیم به نام تفسیر قرآن به قرآن کعنهو خدا را مفسر آیه گرفتیم استناد کنیم به سخن خدا در مفهوم یک آیه از آیات و قرآن بسیام تفسیر قرآن به قرآن اما در حوزه مفسران انسانی در حوزه مفسران انسانی رسول الله اولین مفسره و حضرتش طبق آیه 44 سوره مبارکه اعراب نحن که خداوند میفرماید و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیه تا تو برای مردم مشخص کنی تبین بکنی آنچوری که برای مردم نازل شده پیغمبر مسئولیت داره که به تبیین آیات اقدام بکنه و به عبارتی پیغمبر در راستای قرآنی کریم دو تا وظیفه داشته یک ابلاغ آیات به عنوان یک انسان امین یک انسانی که یک امانتی رو تحویل گرفته و باید این امانت رو منتقل بکنه به مردم گاهی خداوند می‌فرماید که انما عليك البلاغ بر او تو است که خوب مطلب رو برسانی پیغمبر در راستای این وظیفه الهی یتلو علیهم آیات آیات خدا رو بر مردم تلاوت و می‌فرماید من وظیفه دارم که اطل القران قرآن رو بر شماها بخوانم این وظیفه اولشونه وظیفه دومشون تعلیم کتابه آنچه که مربوط به تعلیم کتابه که میفرماید و یعلم و همول کتاب اول حکمت تعلیم کتاب دیگه همین تفسیره یا تبیینه یا تشریحیه که اتفاق افتاده ولی زا میویند که پیانبر اسلام اولین مفسر است. اینو هم شیعه قبول داره هم احل سنت قبول دارن چون مستند هست به بیانی از قرآن کریم خب حالا اینجا یک سوالی در علم تاریخ تفسیر مطرحه و سوالی که در علم تاریخ تفسیر مطرحه اینی که رسول خدا که طبق آیه 44 سوره نحل وظیفه داره به تبیین قرآن کریم به پردازه آیا پیغمبر اسلام چه بخشی از قرآن رو تبیین کرده یا تفسیر کرده آیا همه قرآن رو تفسیر و تبیین کرده یا مثلا یه بخشهایی رو تفسیر و تبیین کرده خب دو تا دیدگاه وجود داره در کتابهای تاریخ تفسیر که اگر مراجعه بکنید این دو تا دیدگاه رو من به طور خلاصه برای شما میگم چون به وقتی ما می‌خوایم نقش حدیث رو در تفسیر قرآن برای شما بیان میکنیم یک فرض هم اینه که ما بفهمیم چقدر از آیات قرآن تفسیر شده به وسیله رسول الله در این زمینه دو تا دیدگاه وجود داره یه دیدگاه اینه البته برپایه یه بعضی از سخنانی که از برخی از صحابه نقل شده که حالا من براتون نمونه ها شده می یه دیدگاه اینه که پیامبر اسلام آیات محدودی رو برای اصحاب خودشون تفسیر و طبیعی می و استدلال میشه که حالا یا پیامبر فرصت نداشت که تمام قرآن رو تبیین بکنه یا اصولاً تمام قرآن نیازه به تبیین نداشت به وسیله رسول الله چرا برای اینکه بالاخره قرآن به زبان عربی رو عربی روشن نازل شده و عرب ها هم که قرآن به زبان مادریشون بود وقتی که قرآن کریم خونده میشد خب همه به اختزای زبان عربی میفرق دیگه پیام آیات و مفاد آیات رو میفرق میدن دیگه مگر این که یک آیه ای به دلیل تشابه مثلا آیه متشابهی باشه یک آیه ای که از جنس متشابهات باشه به دلیل تشابه یا یک آیه ای مبتنی بر یک مشکل باشه که بعدها بگم، بگن این جزه آیات مشکله قرآنه نیاز به تبیین داشته باشه و پیغمبر اسلام اون رو تبیین کرده باشه در واقع کسانی که تصور میکنن که پیغمبر بخشی از آیات قرآن رو تبیین کرده ولا غیر نظرشون اینی که خب بخشی از آیات قرآن نیاز به تبیین داشته به دلیل این که از خیلی متشابهات باشه یا به دلیل این که یه مشکلی در این آیه باشه که نیاز به توضیح داشته باشه یا مثلا مجمنی باشه که قرآن پیغمبر باید این اجمال رو تبین بکنه با سخن خودشون و با ویان خودشون علاوه بر این استدلالی که حالا برش ما گفتم استناد میکنن به دو سه تا سخن که از قول آیشه یا از قول خلیفه ثانی عمر بن الخطاب در کتاب های تاریخ تفسیر دیده میشه و هم امثال مثلا سیوتی یا زرکشی یا در دوره معاصر مثلا ذهبی در تفسیر و مفسرون بیان میکنن حدیث آیشه اینه که آیشه, آیشه در یک سخنی میگوید که ما کان النبی یفسر القرآن الا آین بعَد آی جمع آیه است یه آین بعدت یعنی آیاتی معذور یؤلمه جبرائیل پیغمبر به غیر از یک آیات محدود و محدودی رو که جبرائیل به او آموخته بود آموخته بود چیز دیگری را تفسیر نکن این یک روایت منقول از آیشه هست که از مصادیق ام المؤمنین هستند و زندن روایات زیادی در کتاب‌های اهل سنت به نقل از آیشه ما داریم که می‌گوید ما کنن نبی یو یفصل قرآن الا آین به الا آین بعدد علمهور جبرائیل یه ای آیات محدودی که جبرائیل به او آموخته بود اونم برداشت برای مؤمنین تفسیر کرد این یک قرینه یا یک دلیل روایی که طرفداران طبیین محدود پیغمبر به اون استناد می دلیل دیگری یک روایتی که از خلیفه دوم، نقل شده که خلیفه دوم گفت که پیامبر اسلام از دنیا رفت و تکلیف سه مسئله رو برای ما روشن نکرد یکی آیات ربا یکی آیات ارس کلاله و دیگری آیات امامت مسئله امامت رو برای ما روشن نکرد این هم بازی حدیثیه که از قول خلیفه دوم در کتاب های تاریخ تفسیر شما ممکنه ببینید و مطالعه کنید آیات ربا که به تحبیر ایشون مثلا حد و حدود ربا دقیقاً باید چی باشه آیات ارس و اونم ارس کلاله که ایشون معتقد بودن یا نسبت میدادن به رسول الله که تبین نشده ارس کلاله یه استلاحیه یعنی ارس خواهر از برادر یا برادر از خوهر یعنی نسبتی که ارز کنم بین خواهر و برادر در مقوله ارسه استلاحا میگن کلاله که یستفون و کفل کلاله در خود قرآن کریم هم داریم و باز به تصور ایشون آیات امامت هم خیلی تقدیل نشده به وسیلی پیغمبر من حال کار ندارم که این روایات رو خیلی هم تضعیف میکنن یعنی میگن هم حدیث آیشه سند درستی نداره هم حدیث عمر خیلی مثلا اسناد سعی و قابل تعملی نداره ولی این شده منشه دیدگاه که یک دیدگاه اینه که پیانبر اسلام در مجموع آیات محدودی رو تبگیم کردن حالا یا به این دلیل که آیات محدودی از قرآن نیازه به تبگیم داشتن بدانید که حالا در قرآن ما متشابهات داریم متشابهات قایدتا نیاز به طبیعی داره یا اینکه اهمیت میدن به منغولاتی که از قول آیشه یا خدیطای دوم بیان شد ولی به هر حال یه دیدگاه دیگه دیدگاه دوم که دیدگاه مقابل این دیدگاه هست که هم شیعه قبول داره هم بسیاری از اهل سنده معتقدم که پیامبر اسلام سراسر قرآن رو تبعیم کرده یعنی وقتی خدا به پیغمبر یک فرمانی رو میده که برنزل نا الیک از ذکرون تو بیند ناسمان مسلح الی هم خب پیغمبر به این واجب دینی یا واجب علمی یا واجب تبلیغی عمل کرده و قطعا سراسر قرآن رو تبدیل کرده حالا شما سال نکنی، مگر سراسر قرآن نیاز به تبدیل داره که پیغمبر تبدیل کرده باشه جوابش اینه که قرآن کریم یه سطوح مختلفی از معنا داره خب یه ظاهری قرآن داره یه باطنی قرآن داره ظاهرش حب و عرف همه می‌فنگون یا اکثر قرآن از نظر زائر مشکلی نداره اما لایه‌ی ظاهری قرآن معنی نمیشه که مراتب دوم، سوم می‌کنیش که مراتب به قطعون قرآنی بیان نشه قاعدتاً قیام بر اسلام میتونه علاقه بر زائری که عربا می‌فهمن خب از کنم یک لایه های دیگری از معنا رو حبیه کرد. برای اینکه این موضوع رو یه مداری بیشتر بشکافیم اولا من از دو استداه ظاهر و باطن باید نام ببرم که شیعه و سنی ربایاتی از قیرانبر نمی کنن که این من قرآن زهرن و قطنان بعد تازه بعد بنده بطنهی بطنه, بطنه الی سبعت ابتون قرآن ظاهری دارد باده می دارد اونم باده دارد تا هفت بطنه یعنی قائلتاً باید ما مقتقب به زهر و برای قرآن باشیم که حتی اگر ظاهر قرآن برای احرام مطابق زبان عربی روشن بوده تو قرآن عربی مهمه حتی اقل در حوضه‌ی باطلش مردم نیاز به بیان پیغنبر داشتن یکی اینو بگیم یکی این که از دو اصطلاح علوم قرآنی بهره ببریم که این دو اصطلاح یکی اسماء قرآنه یکی اقرار قرآن و ببینیم پیامبر برای اسلام دو گونه فعالیت قرآن داشتند یکی اسماء قرآن یکی اقراق قرآن بعد این دو تصده ها معنا رو برای که به دامنه تبین رسول الله برسید خب اسماء قرآن یعنی چی؟ اسماء قرآن یعنی به گوش رساندن قرآن یعنی فیغمبر یه مرحله از وظایف تبدیلش این بوده که آیات قرآن رو به گوش مردم برسونه بدون هیچ گونه حوزی و بگذارند که مردم بر حسب عرف زبان مادری و عرف عربی هیام از قرآن کریم بگیرند. این رو اسمای خب پیام بر اسلام هیام بر اسلام در مکه قرآن را اسماغ فرمود. چطور اسماغ فرموند؟ پیامبر اسلام در مکه تو اون سال اول که اصلا محیط مکه، محیطی بود که پر از شرک بود، پر از گفت بود معمور بود که آیات قرآن را به گوش مردم برساند. ایشان برای آیات و قرآن رو درموش مردون برسانن می آمدن در, در مسئله حرام خب، در مسئله حرام می نشستم قرآن می خوندن یا گاه در قالب نماز، که الله و اکبر، نمازم جماعتنه بودن، نمازم فراده بود الله و اکبر، شروع کردن به نماز خوندن، بعد از صوره همدون می خوندن، بعد از سوره هم به جایی تیز با آقا عرفت کن بینده سوره فسلت رو بخون فس پنج سرکه، چار سرکه سوره مقمن سوره رو سوره رو که بودن، بودن خود رفعه مصرور یک مکان عمومی بود می و قصد تواف داشتن مسافران، و گذران، افراد بباره می آمدن یه ای آدمی این جایی ویساده دقایق زیادی سر کاف کنچ کاف می شدن می رفتن نزدیک می شدن گوش می دادن یه سخنان می احساس می که این سخنان جنسش متفاوته با حرف و که تواله شنیدن بعد سبر کردن این بدن خدا به داخلی یه وقتی گفت السلام علیکم و رحمت و دا می رفتن پیششم گفتن اینوی که چی چیشی بود پیشون می مثلا وحبی علاوی بود بر من. و بعضا تحت تأثیر من رو می گرفتن آیه نوزده سوره انعام می و او الهیا هازل قرآن لانزر کنم بهی و من این قرآن به من وعی شده تا به وسیله همین قرآن به انذار شما بپردازم شما این زمین کم مشکین کفار مشکین مشکین اصل موضوع قرآن این قرآن هم باید به گوش شما بخوره هم به گوش آیندگان لعن ذرک امیهی و مندره. این همون مرحله یتلو علیه هم آیاته هست دیگه چون قبل از یتلو علیه آیات آیاته امیهی هم دیگه دواللزی بحث فل امیهینا رسولا منون این امیهی مردون مکه هست یتلو علیه هم پیغمبر براد آیات رو برای نا بخواند و پیغمبر میخوند و پای خطراتش و ریسکش و تحدیداش هم میلشست خب در این حالت بر حسب همون عرف عربی کسانی که قرآن رو میشنیدن حیام آیات رو درد میکردن بایی متحدد می شدن مسلمان شدن، گاهی منطق در شرایطی مقاومت کنه. اصلا روی برگردانن اصلا حالت تنفر بهشون دست بده. قرآن می‌فرما: ان کن لا تسمعوا الموتى. تو نمی توانی کسی که مرده یا خودش رو به مرده بیزده چیزی به شنوانی و ما تسمعوا الصم با. تو نمی توانی. یه ايه تو برحسان و عزت را علیهم آیاته آیاتنا بعد مستک بر ضا بودعلیم آیا بنا و را مستک برن که لا نسممع ها که ان قفی دویه وقتها و یه که مثلا ما من و و ه از چشمانشون جاری میشه فرض کنید یک عده مسلمان میشن تو این مرحله با مرحله اسماء یک یه مسلمان میشدن خب اینهایی که مسلمان شدن تحت تاثیر قرار گرفتن یه تحول ایمان به نمودن کردن که حالا من سه چهار یک سخنرانی کردم اعجاز قران از مختمذر اثرگذاری برمستنه این اصلا یکی از مجور اعجاز قرآن تمام مبانی و دلائل و شواهدش هم پیدا کردن یک دانشکار شریف دشتی یک سمینار اعجاز قرآن بود موضوعی که برای من انتخاب شده بود اعجاز قرآن از منظر تأثیرگذاری بوده برمو خاطبان این مسایی رو کاملا بررسی کرد حالا یکی کسی تحت تأثیر قرآن مسلمان شده این میاد خدمت پیغمبر میخواد با آدار مسلمانی با محتوی اسلام آشنا بشه اینجا پیغمبر میاد قرآن رو برقوع اقرار ما از مرحله اسمای قرآن بایده چه مرحله میشیم؟ اخباراق قرآن اخباراق قرآن اخباراق یعنی چی؟ اخباراق یک اصطلاعه مستر باب افعاله گفت ما یک قرآت داریم یک اخباراق اخباراق یک قاری داریم یک مقلی ده قاری یعنی کسی که خودش قرآن میخوانه خودش قرآن را قرائت میکنه مقری یعنی شیخ القرآه استاد قرائت یعنی کسی که قرائت قرآت رو یاد میده و بعد این قرائت رو تحویل میده. به خودش میگه بخوان ببینن چطوری میخونی و بعد شاید اون وقتی که میخواند قلطهای او را میگیرد ما به چنانه میگیم مقری اقراق به تحویل خراعت او را اسلام برای خودش آهریه اما برای امتش مقریه مقری که برای امتش مقریه خب آیا پیغمبر اسلام که برای امتش مقریه برای مؤمنین مقریه این به این است که پیغمبر کلاس میگذاشت برای مردم و میگفت که مثلا من الان سوره تولید رو میخونم بعدا شما برای من بخونید آیا مردم عرب زبان مثلا نیاز داشتن که از ذره فرض کن تلفظ رو گروف مثلا سین یا مساد رو خرض نکنن مثلا به چیمی چیز نیاز اقراء آیا اقرار قرآن نسب پیغمبر نسبت به عربایی ده که تجویدشون رو کنترل بکنه سقیل خانه رو کنترل بکنه موازماشه غلط خلوب نکنه. برای ما که اصلا دیگه من از این مسای برای اینکه معنای اقرار رو بهتر بدنین من یک حدیث می‌رسام که اساساً خود این حدیث دو تا معنا رو دو تا چیز رو برای ما ساده zincوله دو تا مسئله رو این حدیث منرسام ثابت کنم این حدیث رو هم عبدالله بن را روایت کرده هم به بکر روایت کرده هم از عثمان ملویی روایت شده از حدیر ملویی روایت شده چون طرور مختلفی داره من تدادی از راویاش می میدیسم اصل حدیث رو شخصی به نام عرض کنند خدمتون عبدالرحمن سلمی روایت میکنه که این شاگرد این ایشون استاد آسمه و شاگرد ایناست یه یعنی جز اتفاقه تابعینه شاگرد عبدالله ابن مسعود او باید میکرد عثمان علی و از اون طرف استاد آسمه ایشون نداره کنه که هست شبه عبدالله ابن مسعود و عثمان اینا به ما میگفتند که. که چی؟ که این نه رسول الله کان یهر رعه من قرآن پیدا مجلس درس می‌گذاشت برای صحابه خودش قرآن رو اونها اقرآ می‌کرد اقرآ می‌کرد حالا به چه مونه‌ی اقرآ می‌کرد؟ اِنّای رسول الله یهره قرآن الْعَشْرَ فَلْعَشْرَ پیغمار اسلام قرآن رو اقرار میکند برای صحابه ده آیه به ده آیه یعنی گفت الان میخوام راجب به ده آیه اول سوره واقعه کار میکنم با شما ال عشرة فل عشرة فلا یجع بزونا مثلا عشر وقتی که بر مجلس میگذاشت و ده آیه ده آیه با اصحاب خودش کار میکن اینا از ده آیه به ده آیه بعد تجاوز نمیکردن منتقل نمیکردن حتی یو علمون هم علم علم و عملا جمع اگر که نکات علمی و نکات مربوطه و عمل در این ده آیه قرام عامدان گفته بشه بعد راهی میگه فتعلما فتعلما او بین وسیله فتعلما العلم و عملی و اعماله جمیع ما به این وسیل در زمان پیان بر اسلام هم تمام علوم قرآن رو یعنی معانی آیات رو هم تمام احکام عملی قرآن رو یاد گرفتیم خب این حدیث در کتاب های مختبر روایی شیعه مسانی واحد شده خب این دو تا مطلب رو ثابت می‌کنه برای ما یکی این حدیث از عدنده یک از عدنده تبیین تمام قرآن به وسیله رسول چون من اول که راست گفتم در خصوص اینکه پیغمبر اسلام چه بخش از قرآن کرده رو یاد داده یا تبییل کرده یا تفسیل کرده دو تا دیدگاه وجود داره یه دیدگاه میگه پیغمبر یک ای الفاظ معدودی رو به راه تدریس کرده. یک دیگویی پیغمبر کل قرآن رو تدریس کرده، یا تبیین کرده. این اصولی، این این حدیث یکی از ادله تکمیل تمام قران به وسیله رسول خدا. نکته دومی که میفهمیم مفهوم اقرا در عصر پیغمبره که اقرا در اصل پیامبر شامل تعالیم لفظ و معنا هر دو بوده هست. در حقیقت ما خواستیم مفهوم اقرار را هم یه میداری روشن بکنیم که پیامبر یه فعالیت اسماع القرآن داره در جمع مشرکین. چون پیامبر که در جمع مشرکین موظف هم قرآن رو توضیح هم بده. آلات و صرفاً به گوش می‌رساید، اما در جمع مؤمنین اختراح کرده. اختراح در زمان پیغمبر شامل تعلیم لفظ و معنا هر دو بوده، برای که با حدیث می‌گید، یکره هم، سیستم پیغمبر یک سیستم درسی بوده، که پیغمبر هم به آموزش تدریجی بوده، همونطوره یه قرآن میگه میگه و قرآنن فرقناهو لتبره او علن ناسه علا مکس و نظرناهو تنزیلا ما خود این قرآن رو تک, تک کردیم تک تکی هم برتون نازم میکنیم و حضور قرآن تدریجی بوده بلیکه تو هم لتبره اهو علن ناسه علا مکس و نظرناهو تمزیلا از همینجانی تهمیم که من سالها قبل خودم سالها قبل خودم یه مواله نوشتم به این منوان. آموزش قرآن در سیره رسول اکرم سلام باید کارش بساند اصلا در این مواله که سالها قبل نوشتم و چاپ کردم عنوان آموزش قرآن در سیره رسول اکرم کاملا صحبه کشه که بیغمبر معتقده به آموزش تهیلیجی بود مثل یک معلمی که سال خودش رو باید تقسیم بکنه بین در 15 جلسه و هر جلسه یک قطعه شو دیا بده، خب ما از رسول الله در واقع یاد گرفتیم. پیغمبر و خدا هم اعصاب قرآن رو با منوی تدریجی به پیغمبر نازل کرد. برای اینکه ذهن پیغمبر کم بشه. به حمایت‌های لحظه به لحظه و روز به روز خدا در آیه سیورین سوره‌ی آمده که و حالا لزین اکه افرگو لولان و سلط قرآن جمعه‌تن قاعده و می‌تواند کذا نیکن لی‌و سب بتدهی و حتی نوعبو پس دناورین ما هم جزء طرفداران این نظریه هستیم که بیامن اسلام همه قرآن را تبهیده و برای امت خودش واقعا این حقایه رو حقایه به رو روشن کرد. ممکنه شما یک سوالی بپرسید و اون اینی که آیا همه قرآن کردیمی که تبین شد به مسئله رسول الله این تبین ها ماند به شکل حدیث چون که پیغمبر بگه حدیث دیگه آیا این تبین ها ماند به شکل حدیث که از یا سنی روایت بشه خب یه وحث دیگرگیه شما باید ببینید که در زمان پیغمبر امکان تدمین وجود داشت بعد از محدد پیغمبر امکان تدمین وجود داشت یا مثلا فرض کنید آنچنان که ما در درس های تاریخ حدیث برای شما گفتیم گفتیم که خب در قرنه اول گاهی می‌شد که در مسیر نقل و نگارش احادیث رسول الله یک اتفاقاتی می‌افتاد، یک مانع شد می‌شد بعضی‌ها معافق بودند، بعضی‌ها مخالف بودند یه رشته از روایات شد یا نقل شد یه رشته‌ای برحال نقل نشد اینا دیگه یک سری مسائل تاریخی رو ما در حوزه تدویل روایات فیغمبر بررسی کنیم ولی الان ایها الان ما در کتاب هایی که شیعه نوشته یا اهل سنت نوشته روالات زیادی از رسول خدا در تفسیر آزاد کنیم خب الان شما به تفسیر تبری مراجعه بفرگویی تفسیر تبری یا به تفسیر ابلکسیر یا به تفسیر ادرر منصور از ها حدیث می‌بینید که میگه قال رسول الله پیغمبر زیر این آیه اینو گفته پیغمبر زیر این آیه اینو گفته در تفسیر هایی که اهل سنت نمشتن ها در تفسیرهایی که شیعیان نوشتند شما روایات تفسیری فراوانی منغول از رسول الله میبینید حالا البته این روایات چند درصدش سندش صحیحه یا سندش ضعیفه یا حتی ممکنه فقط شواهد و قرائمی جعلی باشه جعلی بودنش آشکار باشه اینا بحث های علمی دیگره جایی این بحث ها تو هم درسای تاریخ تفسیره که برای شما قطعاً یه سری درس تاریخ تفسیری هم ولی برای آنچه که باقعاً مشخصه به با عنوان ماحسن این بحثی که ما برشمار کردیم اینه که شکلی از تفسیر نام تفسیر روای یا تفسیر بلمعصور یه دیگه اتفاقیه دیگه یعنی تمام دانشمندال اسلامی موقعی که میخوام از سابقه تفسیر در اسلام حرف بزنم میگن که در ریشه تفسیر، در اشکال تفسیر ما دو شید. یا دو مبنا برای تفسیر اورهان به طور مشخص میتوانی داشته باشیم یکی تفسیر روایی یا تفسیر بالمعصور و دیگری تفسیر اجتهادی یا تفسیر عقلی آده تفسیر دلمحصور تفسیر خالص رواید تفسیر اجتهادی یا تفسیر عقلی روایت و حدیث یکی از اناسر یا منابع یا اصول اینا فرم نمی کنه تقریبا برای یه منابط تفسیر که ما برای اینکه جایگاه حدیث در تفسیر را درک بکنیم برای که جایگاه حدیث در تفسیر رو درک بکنیم اول یه مقدمه گفتن که اولین مفسر انسانی پیغمبره اینو برای شما گفتم بعد گفتم که پیغمبر اسلام چه بخشی از قرآن کریم رو تفسیر کردن چه تقریر کردن الان از اون مقاله نواصلین ساعت شب خب اینو برای شما گفتم که دو دیدگاه وجود داره یک دیدگاه مقتنی بر این که پیغمبر آیات محدود رو تفسیر کرده عدده روایش رو گفتم بعد گفتم در مقابله این یک دیدگاه نوبانی وجود داره که پیغمبر همه قرآن رو تبیل کرده چون اگر خدا یکی مثلای پیغمبر به یه حتما عمل میکنه. این دلیل عقلی حوانس پیغمبر که تخلف نینی کنه از فرمان اداری بعد شاهد تاریخی رو هم یه روایت براتون درشتم که پیغمبر زنن مثل یک معلمی که جداً معتقده به آموزش تدریجی بود کلاس میگذاشت ده آیه ده آیه کار میکرد وقتی ده آیه رو محطم میکرد نکات علمی و احکام عملی که از این ده آیه مستفاد بود رو میگفت بعد میرم به سراغ ده آیه بعدی و ما این نظر تبدیل کل قرآن رو ترجیح میدیم بر نظری که متعاده پیغمبر یا آیات محدودی رو فقط تفسیر کرده بعد از این قضایی ها گفتیم که وقتی که ما نگاه میکنیم به واقعیت های کار مسلمانان راجعه که به واقعیت های کار مسلمانان برمی اصلا اون قرنهای اولیه دو شکل از تفسیر با میشه. یکی رکه بهش می تفسیر محصول یا تفسیر روایی یا تفسیر نقلی یکی که می گفتن تفسیر اشتماعی یا تفسیر قرآنی یا بعضی که می خواستن بزنن تو سر این تفسیر می گفتن تفسیر درن این تفسیر درن برای زدن تو سر تفسیر علیه اشتادیه و معمولاً هم اصطلاح شد به اون حدیث بر که می‌فرماید منفذ سر قرآن به رعیهی فلی یتفق و من نار کسی که قرآن رو با خودش تفسیر بکنه جای خود و جانباه خودش رو از آتش پر کرده اجالتاً چون بحث جانگاه حدیث و تفسیره به نوان جنبندی این برس ها که در جایگاه حدیث در تفسیر در تفاصیر نقلی از شود حدیث با تفسیر برابری می کنند. به بارت تفسیر ماهیت کاملا نقلی و رقایی دارن این جایگاه جایگاه امیتماقیه ما هم این حرفتو تو فقه هم گفتیم براتون گفتیم گاهی اوقات فقه ماهیتی جز حدیث ندارد. در تفسیر رقایی یا رقایی هم میگیم که حدیث با تفسیر براوری میکنه تفسیر ماهیت کاملا نقلی و رقایی دارن در این پخش رقم میگیم که حدیث یکی از منابع و مستندات مهم تفسیر است. در تفاصیر اجتادی ما نقشه حدیثو در سطح یک دونه منبع یا یک دونه از مستندات میگیریم برای همین الان به تفسیر مجمع آلویان مراجعه به فردونیم که خب میبینیم که حال مواردی بفرد بفرد بفرد وقتی که به تفسیر مجموع بایان مراجعه میکنیم میبینیم که خب این تفسیر یک تفسیر عقلی اجتفادیه دیگه لغت رو معنی کرده سبب موضوع رو میگه راعت رو میگه اختراف راعت رو میگه بعد حدیث هم میگه مثلا زین آنیه اگر که حدیث ایمانه شده حدیث رو هم میگه به تفسیر کشاف زمخشری مراجعه می‌کنید، تفسیر کشاف زمخشری نمونه یک تفسیر عقلی اجتهادی حتی با گرایش عددی و با گرایش کلامی معتزله چون زمخشری از ذره کلامی کلام تابع تفکر اعتزالی بود ولی در همین تفسیر احادیث زیادی وجود داره و جالبه احادیسی که ایشون در تفسیر رو برده گای, و گای سنداش رو ذکر نمی کنه بعدها ابن حجره از احساس می کنه که این یک نقطه زرفه برای تفسیر کشاف زمخشری بعضی ها ما سمانگیر بروان نقط زرفی یک خوب تفسیر روایاتی که داریم روایات سند داریم زحمت میکشه سند و منبع روایات رو استفسار میکنه یک شقاق می نیسه برای منبع‌یابی روایات تفسیر کشاف در واقع مال زرقشی تا اینجا میخوام بگم دانشمندان ا اتمام دارن وکی استهام دادن به مغازه روایاتش حتی یک تفسیر اکتال اینم راجع به این مطلب که در واقع این بحث ما است فقط یک بحثه کوتاه میمونه اینی که حالا تفاصيل نمیبینیم تفاصیلی که از اول تا آخرش عادیه روایت این تفاسیر گونه اچتهایی میتونه داشته باشه یا جوابش اینه که به اصطلاح بُعدی اشتقادی تفاسیر نقلی مربوط به انتخاب و حبسود مفصل است یعنی این که ما درسه که تفاسیر رو دو بُعدی می‌گیریم تفاسیر نقلی تفاسیر اشتاق تفاسیر مذهبی متأثر از زنی از اجتهاد مفصل، زنی از اجتهاد مفصل اجتهاد مفصل کجا اعمال میشه در کجا اعمال میشه انتخاب حدیث در آخر مثلا مفسر در یک تفسیر مذهبی اصلا که روایت رو ثبت کنه بعضی از روایات روایت درست تشخیص می بعضی از روایات رو روایت ضعیف یا مجبور تشخیص بده و در تفسیر خودش نیاره و درقار مفسر عرب داره، فهم می داره عرب و فهمش در حد تشخیص بعضی از روایات و کنام زدن بعضی از روایت یه دویته یه که درسته که بخش از تفاصل نرینی هم بعضی از تفاصل کاملا روایت شما از اول ناختش فقط حدیث میدید زنید آلیه فقط حدیث میدید بعد اجتحادی تفاصیل نقلی مربوط به چیه؟ انتخاب, انتخاب ربایی تفاصل مفسده بنابراین ما در دقیقت این نکته رو باید لحاظ بکنیم بعد از این لحاظ غیر از این لحاظ خب، یه بخش از تفاصیل تفاصیل نقلی یه بخش از تفاصیل تفاصیل پرس کنم خدمت رو اشتماعی یه مطلب دیگه که امروز عنوان میکنم بستش به ماند انشاءالله برای هفته آینده بر. اون میکنه نصداق نقل تفسیری چیز این باشه عنوان درس هفته یه آینده انشاءاللہ تو الان میگرسید به از آن باید عدد کنیم و دیگه آن با وجود اذان درس درست رو خیلی خوب نیست ادامه بدیم ولی انوار زر سفته آینده رو هم نوشتم که انشاءاللہ واردش میشین و سلاللہ و علی سیدنا محمد و عالی تاکیم آمین آمین آمین